برلین، آلمان، اوت 1961 روز یک شنبه مثل همیشه با آهنگ گوش نوازی آغاز شد که از ویولون هیلدا برمیخواست آهنگی که از زیر در قفل شده اتاق هیلدا می و نوای شیرین و پرحلاوتش در جای, جای خانه جریان میرفت می و رقصان به گوش من می رسید. چقدر ویولون معیر با خواهر کوچک من همخانی داشت و به او می‌آمد. انگار که آن دو برای هم ساخته شده بودند. از وقتی که پدرم هدیه مرد یهودی را به هیلدا داد، پیوندی میان آن دو برقرار شد. هیلدا حتی در آن اوزای رو با حراس جنگ هم علاقه زیادی به نواختن داشت. این علاقه و شغل از زمانی که به مدرسه موسیقی برلین میرفت در او به وجود آمده بود. اساتیدش در آنجا به او خبر داده بودند که نوازنده ی بزرگی خواهد شد. یلدون اسمومی نکرد و پیشبینی آنها را محقق نمود او همه نگاه ها را به خود جلب کرده بود هر رهبر ارکستری خواهان حضور او در گروهش بود با شهرتی که خواهرم به عنوان نوازنده ویولون کسب کرده بود در حفظ و نگهداری ویولون عزیزش یعنی همون ویولون معیر به شدت کوشا بود آن ویولون تنها برای خودش بود و همیشه فقط در اتاقش به تنهایی مینواخت به دلیلی که هیچ وقت برای من روشن نشد هیش را در شنیدن صدای آن شریک نمی کرد. دست تقدیر فرصت زیادی به پدر و مادرم نداد تا به دختر کوچکشان افتخار کنند و او را در حال نوازندگی در ارکستر معروف فیلارمونیک شهر برلین ببینند. یا شاهد آن باشند که به عنوان رهبر ارکستر سازهای زهی انتخاب شده است. ژنرال از دنیا رفت و شکست میهنش و خرابی های آن را ندید. او ندید که چطور همه قدرت های دنیا برای سرنگونی رایش سوم هم قسم شدن و بعد از آن چه خرابی در کشور به بار آمد. یک هفته بعد از فوت ژنرال مادرم به او پیوست. آنقدر به او علاقه داشت که نتوانست بیشتر از آن دوریش را تحمل کند. چند ماه بعد من و هیلدا خانه پدریمان را فروختیم و به خانه جدیدی نقل مکان کردیم. این خواسته من بود و هیلدا هم مخالفتی نکرد. او ترس مرا درک می‌کرد. می دانست که نیاز دارم از هر چیزی که ممکن بود با نام لیون اشمیت مرتبط باشد دور شوم هیلدا از نوع کار من با آیشمن در دوران حکومت هیتلر اطلاع داشت و میدانست به خاطر این موضوع چه خطری مرا تهدید می کند. به ویژه بعد از آنکه اسرائیل اعلام کرد آیشمن را دستگیر کرده و بازجویی از او را آغاز نموده است. ضمنه اینکه بلافاصله بعد از پایان جنگ من از او خواسته بودم نام را کنار بگذاریم و به جای آن، از نام خانوادگی مادرمان استفاده کنیم. هیلدا نیز موافقت کرده بود و بعد از آن ما لیلیان و هیلدا بیکر شدیم. همه این اقدامات به خاطر امیت بود. اینها آخرین آموزش هایی بود که گشت و اواخر کارش و بعد از آن که نابودیش نزدیک شده بود بین کارمندان خود پخش کرد. کسل و بی از رختخوابم بلند شدم. داشتم برای روز تعطیلیم برنامه ریزی می کردم. من حالا در دویجه بانک کار میکردم. آن حلقه اتصال دوستان قدیمیم قطع نشده بود. با وجود شکست در جنگ بسیاری از آنها در مراکز مهمی مشغول به کار شده بودند. از آنچه قبلا بودند و فعالیت هایی که داشتند فاصله گرفته و دیگر از سخن گفتن درباره کار سابق خود اجتناب می کردند. بعد از پایان جنگ و بعد از یک دوره کوتاه و آرام که همگی توانستند نفسی تازه کنند، یکی از دوستان نزدیک رئیس سابقم به من کمک کرد تا کاری در بانک پیدا کنم. به عنوان دستیار مدیر خدمات ارزی مشغول به کار شدم. این مدیر از وفاداران و حامیان پیشوا بود. پیشوا هنوز هم برای ما یک کلمه دلنشین بود. موضوع جنگ و آنچه که بر آلمان گذشت جز مسائلی بود که نسل ما از پرداختن به آن اجتناب کرد. آن دوران به تاریخ پیوست، گویی اصلا وجود نداشت و همه میل زیادی به از یاد بردنش داشتند. حالا وطن شاهد بازسازی اجابانگیزی بود و روز به روز بیشتر به جایگاه شایسته خود در میان کشورهای دیگر دست میافت. روزهای یک شنبه من و هیلدا با هم صبحانه میخوردیم. بعد او به طرف شرق برلین برای دیدن دوستش سپ میرفت. سپ هم یک نوازنده ماهر بود و ساکسیفون می نواخت. نوازنده ماهری که خواهرم را عاشق خودش و سازش کرده بود. آنها خیلی با هم هماهنگ بودند. و افکارشان نیز خیلی به یکدیگر شبیه بود. اگر من کمی زیاده روی می کردم که چرا اینقدر همیشه با هم هستن، سپ مثل یک آتشفشان برافروخته می شد به خاطر علاقه زیادی که به کمونیست ها و افکار و اعمال آنها داشت با آلمان شرقی منتقل شده بود. هیلدا بارها از او خواهش کرد نزد ما بیاید و با ما زندگی کند. اما سپ نمی پذیرفت و هر بار درخواست او را رد می کرد. هیلدا سعی می کرد به او بقبولاند، در صورت انتقال به اینجا آزادی بیشتری ای خواهد داشت در غرب هم میتونی یک کمونیست باشی اما سیپل و فاصله در پاسخو میگفت در غرب کمونیست مثل یک عروسک خیمه شبازی برای تثبیت قدرت هست. نظام سرمایه‌داری بر پایه استثمار بنا شده برای اینکه همیشه اکثریت در مقام ضعف باشن و قدرت در دست اقلیت باشه کمونیستها در غرب مثل یک گل سرخ روی جیب کت ثروتمندان هستند سب هر وقت درباره عظمتی که در انتظار آلمان شرقی بود صحبت میکرد چشمهایش برق میزد میگفت دنیا از آنچه آلمان شرقی محقق خواهد کرد مبهوط خواهد شد و از این فکر چهرش واقعا میدرخشید اعتقاد راسخ و تام داشت که آینده شگفتآور خواهد بود و اینکه عظمت آلمان بزرگ به دست فرزندان شرقیش باز خواهد گشت و آنها الگوی مثال زدنی خواهند شد و به دنیا درس عدالت خواهند داد بعد هم شروع میکرد نقل قول از کتاب آرمان شهر توماس مور درباره ادالت اجتماعی. تا وقتی مالکیت خصوصی وجود دارد و پول معیار همه کارهاست گمان نمی که ملتی به شادکام باشد حکومتی عادلانه داشته باشد. حکومتش عادلانه نمی شود چون بهترین چیزها به کف بدترین کسان میافتد. شادکام نخواهد بود از آن رو که همه چیز میان مشتی مردم تقسیم می شود و حتی همین گروه انگشت شمار نیز به راستی آسود خاطر نیستند زیرا که دیگر مردمان, دیگر مردمان سخت بینوایند من و هیلدا داشتیم صبحانه میخوردیم که ناگهان صدای موسیقی رادیو قطع شد و گوینده اعلام کرد اینجا برلین است رادیو صدای آزادی صبح امروز نیروهای پلیس برلین شرقی با همکاری تعدادی از نیروهای ویژه اقدام به ایجاد حساری از سیم خاردار بین دو بخش شرقی و غربی شهر نمودند. حکومت آلمان شرقی از 81 گذرگاه عبور و مرور میان بخش شرقی و غربی 69 گذرگاه سمت شرق را بسته است. برلین شرقی به شهروندان خود اعلام کرد عبور از گزرگاه ها و ورود به آلمان غربی جز با مجوز ویژه دولتی امکانپذیر پزیر هیلدا غذایش را نیمه تمام رها کرد. و به طرف اتاقش رفت. من شروع به تغییر ایستگاه های رادیو کردم. میخواستم توضیح بیشتری درباره این خبر بشنوم. اما دیدم در تمامی موجها و شبکه‌ها همین پیام قرائت می‌شد. این خبر به پیام واحد همه شبکه‌ها تبدیل شده بود. شهر رسما به دو بخش تقسیم شد. اهالی یک شهر به دو بخش ساکنان شرقی و ساکنان غربی تقسیم شده بودند. رهبران ما به همین سادگی و با آرامشی کشنده این طور مقرر کردند که پدر برای دیدن پسرش که فقط دو خیابان دورتر از خانه او زندگی میکرد نیاز به مجوز داشت و مادری که در شهر زندگی میکرد اگر فرزند دخترش در غرب متولد میشد نمیتوانست نوههایش را ببیند به یاد حرف پدرم افتادم که میگفت بشر همیشه از دست رهبران خود در عذاب است آنها دائم مردم را به چپ و راست میکشانند برای رسیدن به خواستههای رهبران و عتش سیریناپذیر آنهاست که مردم به پاینتر در... درجات انسانی سقوط می کنند. او اگر امروز زنده بود و این جنون را می‌دید که شهری ناگهان بیدار شود و ببیند به دو شهر تبدیل شده و دیواری غیر قابل نفوس آن دو را از هم جدا کرده است چه می گفت؟ هیلدا به سالن برگشت. لباسش را پوشیده و کیف سفریش را در دست داشت. بلافاصله فهمیدم چه قصدی دارد. دیوونه شدی؟ باید برم پیش سپ بعد از این اتفاقی که افتاده ممکنه دیگه نتونم برم. نقطه های تاریک و سیاه در, سیاه در زندگی من خیلی بیشتر از یک مورد و دو مورد بود و من همیشه از توقف آنچه در جریان بود ناتوان بودم. آلمان سقوط کرد. آن همچه سقوط پرسر و صدایی. خسته از دنیا رفت. مادرم تنهایم گذاشت و حالا تنها کسی که برایم باقی مانده و پشتم به اوگم بود ساکش را کرد تنها میذاری و میری نمیتونم ازت بخوام با من بیای میدونم تو در مورد شخص چه احساسی داری اما امیدوارم همه چی درست بشه و خیلی زود بتونیم بازم همه دور هم جمع بشیم همه چیزهایی که دوست داشتی چیزی که تمام زندگیت عاشقش بودی و عمرت رو براش گذاشتی همه رو فقط به خاطر یه مادرها می‌کنی کنی؟ موسیقی... موسیقی تمام شدنی نیست هیچ وقت و هیچ جا موسیقی متوقف نمیشه. من همیشه یه نوازنده خواهم بود. گوش کن لیلیان. من فکر کنم این دیوونگی ها فقط یه نمایش سیاسی جدیده. یه برگ برنده در مذاکرات که با خوش یه سودی به دست میارن و بعد از مدتی همه چی به حالت قبل برمیگرده. سیاستمدارها دیگه در این کارها حرفه‌ای شدن. یک رو شروع میکنن که به نظر همه دیوونگی میاد و بعد از اینکه به خواسته هاشون رسیدن نظرشون عوض میشه و از خودشون برمیگردن. و خیلیها وسط همین دیوونگی سیاستمدارها گیر میافتند و گرفتار میشن. تو اون وقت چیکار می کنی؟ سعی کردم در حد توانم به او التماس کنم. هرچند می این آرامشی که داشت دقیقا نشانه اطمینان داشتن از کاری بود که میخواست انجام دهد. هیلدا هر وقت تصمیم به انجام کاری میگرفت تحت هیچ شرایطی از تصمیمش بر نمیگشت. همان امید کوچکی را که هنوز دلم زنده بود با این حرفش گشت. من باردارم لیلیان.